شاخه آوازخان، پرنده رازگو و آب جوانی بخش یکی بود یکی نبود توی یکی از شهرهای قدیم پادشاهی بود که از بس خوش قلب و عادل بود دلش میخواست همه رعیتش شاد و خوشبخت باشند این بود که یه روز از قصرش بیرون اومد و برای اینکه ببینه حال روز مردم چطوره تک و تنها توی کوچه ها را افتاد و به در هر خونه که می رسید در میزد و میگفت من پادشاه شهر شما هستم. اومدم از نزدیک زندگی شما رو ببینم. و اگه دختری توی خونه بود بهش می گفت خوابی رو که شب پیش دیده براش تعریف کنه. راستی اینو هم براتون بگم. این پادشاه از بس به فکر ملتش بود تو اون وقت به فکر نیفتاده بود که برای خودش زنی انتخاب کنه وقتی گردشش تموم شد و داشت به قصرش برمی گشت یادش اومد که به همه خونه شهر سر زده الا به خونه کوچیکی که پهلوی قصر خودش بود این بود که از دم قصر راهش رو کچ کرد و رفت در خونه همسای زد و گفت باز کنید من پادشاه شهر شما هستم و اومدم از نزدیک زندگی شما رو ببینم همسایه وقتی فهمید که پادشاه به خونش اومده خیلی خوشحال شد پیش دویید شربت و گلاب و میوه و شیرینه حاضر کرد پادشاه رو با عزت و احترام برد توی اتاقشون نشوند و از غذا این همسایهم تا دختر ستاشون مثل پنجه افتا پادشاه روشو کرد به دختر بزرگه و گفت دختر جون دیشب دیشب چه خوابی دیدی؟ دختر بزرگه هم نگذاشت و نبرداشت سینه ای صاف کرد و گفت قبله عالم به سلامت باد خوابی که من دیدم از سر من زیاده با وجود این حالا که امر فرمودید به خاک پایتون عرض میکنم. خوابی که دیدم اینه زن آبدارباشی در بار قبله عالم شدن پادشا گفت بسیار خوب از امشب تو زن آبدارباشی من هستیم بعد رو کرد به دختر وسطی گفت دختر جان تو دیشب چه خوابی دیدی نختر وسطی از خجارت قرمز شد سرش انداخ پایین و گفت قبله عالم به سلامت باد خوابی که من دیدم از سرم هم زیاده ما وجود این حالا که امر فرمودید به خاک پایتون عرض میکنم خوابی که من دیدم اینه زن قلامباشی قبله عالم شدم پادشا گفت بسیار خوب از امشب تو هم زن قلامباشی من هستی آخر سر رو کرد به دختر کوچیکه گفت دختر تو بگو ببینم دیشب چه خوابی دیدی دختر گفت قبله عالم به سلامت باد. پابی که من دیدم بزرگتر از اونه که جرأت گفتنشو داشته باشم. پادشا گفت: "ما باید بگی. حالا ببینید سرنوشت چه ها نمی‌کنه." نقطرک با صدای ضعیفی که از ترس میلرزید خیلی به زحمت گفت: "قبله عالم به سلامت باد. من خواب دیدم که ملکه شهر شدم." پادشاه به صورت دختر که مثل پنجه آفتاب می درخشید نگاه کرد و گفت بسیار خوب چی از این بهتر؟ از این شب تو زن من هستی. اینو گفت و از جاش بلند شد و به قصر خودش راف داد. از اون طرف بشنه از اون دو تا خوهرها که وقتی دیدم پادشاه خواهرشون رو قبول کرد نزدیک بود از حسادت دیبونه بشن. اگر از خدا و از پادشاه نمیترسیدم همون دقیقه زنده زنده رو خورده بودن. خواهر بزرگه می گفت این خانم چرا نگاه کن؟ یه وجب قد و چه گنده خواهر وسطی میگفت، پادشاه رو بگو چه کج سلیقه ما رو گذاشت این کوفتی رو انتخاب کرد. منجه خوشگل بود آبله در آورد خوشگل ترم شد تا حالا بهش نمیشد گو بالا چشت ابروه؟ از این به بعد ملکه شده که دیگه خر بیار و باقالی بار کن. خواهر بزرگم دنبال حرفش رو گرفت و میگفت گفت به سر ما کنن خواهد. اون ملکه شده ما چی؟ یکی موزنه آبدارشی، یکی زن غلام باشی. راستش رو بخوای. هر دوتا مون کنیزای زر خرید خواهر کوچیکه چیزی که بیشتر دل این دوتا خوهر رو می این بود که می دیدن اگه به جای خوهر کوچیکه خودشون جرعت کرده بودن و مطلب اونو گفته بودن اونطور که معلومه پادشاه هم قبول میکرد و حالا به جای اینکه خواهر کوچیکه همسر پادشاه باشه یکی از این دوتا زن پادشاه شده بود تفلک خوهر کوچیکه با این همه حسادت ها و کینه ها چیکار کار بکنه؟ هیچ اما خوهرها که به این آسونیا دست بردار نبودن زیر بقل همو گرفته بودن. هی می رفتن رو پله های رای پشت بود می و پچ پچ پچ پچ پچ هی می اومدن پایی می رفتن پای شیر آبنبار و پچ پچ پچ پچ. هی صداشون رو ویل می کردن حرف های و سلومبه بارا خوهر کچیکه می کردن. که اونم می شنید و جیک و همین آتش خشم خوهرها رو تیز تر کرده بود. تا جایی که قش و ضعف می کردن و حمله قلبی بهشون دست میداد خلاصه خواهرها این بر رفتن اون اونور رفتن بالا رفتن پایین رفتن قش کردند و به حال اومدن و تو جایی که آخر سر دوتایی هم قسم شدن که هر جور شده باشه و هر وقت که شده باشه انتقام این خفت و سرگشتگی رو از خواهر کوچ باری خواهرها همونطور گریه کنان رفته بودن توی صندوق خونه در و روی خودشون چف کرده بودن و به حال و روز بی خودشون عشق می دختن. صدای طبل و شیپور اومد و معلوم شد قراولان و یساولان شاهی با دهل و نقاره و بار و بارخونه اومدد عروس شاه رو به قصر ببرد مردمم که پادشاه را خیلی دوست داشتند، هفت شبانه روز کروچه و بازار و آینه بند و چراغون کردند. زدن و کوبیدن و رقصیدن و شادی کردند. آبدارباشی و غلام باشی دربارم به فرمان پادشاه اومدن خواهر بزرگه و خواهر وسطی را با خودشون بردند. خواهر بزرگ زن آبدارباشی دربار شد و خودش اینجور خواسته بود. و سطی زن قان شد خودش اینجور خواسته بود خواهر کوچیکم شد سگولی حرم پادشاه او هم خودش اینجور خواسته بود روزی گذشت و روز گذشت دشمای پادشاه نشگر کشیدند. اومدن پشت حصار شهر اردو زدند به پادشاه خبر دادند که چه نشسته ما آمدهیم با تو جنگ کنیم پادشاه هم قشونش را جمع کرد و از شهر برد بیرون که با دشمناش جنگ کنه چند روز بعد از حرکت پادشاه ملک دردش گرفت و یک پسر کاکل به دنیا آورد خواهر که همیشه منتظر بودن انتقام خودشون از خواهر کوچکه بگیرند پول زیادی به ماما دادند و رازیش کردن قبل از اینکه که هیچ کس بفهمه یه بچه میمون رو جای بچه بگذاره توی گهواره و بچه خواهرش رو به اونها بده ماما وقتی که کیسه های طلا رو دید قبول کرد بچه میمونی رو گذاشت توی گهواره و پسر کچولو یا خوشگلو رو که ملکه زایده بود سپرد دست دوتا خواهرا. اما به پیر و به پیغمبر قسمشون داد که مبود و بچه رو از بین ببرند خوهرام قبول کردن بچه رو گرفتن در لب ردخونهی که از پای قصر می گذشت. یه زنبیل بزرگ پیدا کردن و بچه رو گذاشتن توی زنبیل و زنبیل رو سپردن دست آب نگو که به مسلحت و خداوندی خدا کمی پایین از قصر پادشاه اونجایی که رودخونه پیچ میخورد خورد باغبونی مرد باقبونی با زن پیرش یه خونه کوچیکشون زندگی می کردن. که از اول عمرشون حسرت داشتن بچه رو خورده بودند و بچه دار نشده بودند از غذا اون روز باغبون پیر اومده بود لب رودخونه به سیر و سیاحت که ناگهان دید زنبیلی روی آب میاد که از توش صدای گریه بچه بلنده لخت شد و زد به آب و زنبیل رو در آورد و دید یه پسر کوچولو مثل شب چارده اون توه. بچه رو برداشت و دوید طرف خونه به زن پیرش که همونطور حسرت بچه رو میخورد. گفت زن اگه گفتی برات چی آوردم؟ یه زن آهی کشید و گفت چی میدونم والا؟ خدا عالمه. یه مرد خندید و گفت بگیر. اینقدر که حسدت بچه رو میخوردی خدا این پسر بچه خوشگل رو برای من تو فرستا. درسته که ما خودمونم اونقدر نون نداریم که بخوریم. ولی خوب بزرگش میکنیم. خدا خودش میرسونه. پیر زنم از ته دل خوشحال شد و بچه رو گرفت و بوسید. با پیرمپاره که داشت لباس کچولوی برای بچه درست کرد و توی گهواره خوابوندش. اما بشنا از پادشاه. که وقتی از جنگ برگشت، دو تا خواهرها جلو دویدن بچه میمون رو دادن بغلش و گفتند: قبله عالم به سلامت باد. خواهر مقدار ما این میمون رو برای شما زایده پادشاه اول تعجب کرد، بعد گفت: لابد مسلحت خداست. از قصه که داشت گریه زیادی کرد، رفت توی حرم و شام نخورده خوابید. یک سال دیگه گذشت. پادشاه از بزنش رو دوست داشت میمونی رو که زنش زایده بود فراموش کرد. باز خوش و با هم زندگی میکردن. کردن. رو هم همونطور گوشت بزنگ بودن که باز وسیله پیدا کنند و انتقامش رو بگیرند. ملکه دوباره بچه دار شده بود و پادشا هم منتظر بود که این دفعه پسر قشنگی براش بزاد. که باز جاسوسا خبر رو که قلعه عالم به سلامت باد چه نشسته اید که دشمنان لشکر کشیدند دارن میان که دوباره جنگ کنند پادشاهم بلند شد شوت لشکرش رو برداشت و با زنش خدا حافظی کرد و رفت که با دشمنا بجنگه هنوز پادشاه از شهر دور نشده بود که ملک دردش گرفت خواهران دویدن ماما رو خبر کردند و پول زیادی هم بهش دادند که مثل دفعه پیش قبل از اینکه که هیچ کسی به فهمه رو بدم به اون و بچه پلنگی رو به جای اون توی گهواره بکساره. ماما هم که فهمید پول زیادی بهش میدن بعد از اینکه اونها رو قصب داد بچه رو نکشند همین کارو کرد. خوهراب شاهزاده رو که این دفعه هم پسر بود گرفتن و بردن لب رودخونه پای قصر رو گذاشتن توی یه زنبیل رو روی آب فلش کردن. زنبیل اومد و اومد و اومد سر پیچ رود خونه لای و خزه ها گیر کرد بچه که توی زنبیل گرستنش شده بود گریش رو سرداد اونقد رونقه اونقه کرد که صداش رسید به گوش باقبون پی دوید رفت داشت آورد داد دست زنش پیر زن بینوا گفت مرد مگه همون یکی بستمون نبود پیره مرد گفت من دلم نمیاد گریه بچه کوچولو رو ببینم لابد خدا با خداوندی خودش مصلحتی دیده که اونو پیش ما فرستاده یا یالا لباس براش درست کن خدا خودش کارا رو, رو براه میکنه پیره زنم که اینطور دید گفت خیلی خوب باشه بزرگ میشن با هم بازی میکنم. اما از اون طرف بشنه از پادشاه که وقتی دشمنانش رو شکست داد و برگشت دو تا خواهرها جلو دویدند بچه پلنگ رو که دست و بال همه رو گاز گرفته بود و کنده بود جلو آوردند و گفتند دبلی عالم به سلامت بود خواهره که بیچاره ما این بچه پلنگ رو برای شما زاییده اما پادشاه که زنشو خیلی دوست داشت این دفعه هم چیزی نگفت فقط ای زیادی کرد چند روزی نه حرفی زد و نه چیزی خورد بعدم یواش یواش فراموش کرد و دوباره مثل اول خوش و خورن مشغول زندگی شد سال دیگه دوباره جنگ شد پادشاه به جنگ رفت و زنش یه دختر خوشگل دندون مرواریدی زایید بازم مثل دفعه بیش خاله های حسودش رو پرداشتن گذاشتن توی زنبیل و به آب دادن این دفعه یه مارمولک کندر رو آوردن خوابوندن توی گهواره نمبیل روی آب رفت و رفت و رفت تا رسید سر پیچ رودخونه لای نیزار دم خونه پیرمرد گیر کرد همی که پیره مرد باقبون صدای گریه بچه رو شنید فهمید که باز خدا براش مهمون کچولوی فرستاده. دوید و دوید که دید بله این دفعه یه دختر دندون مرواردیه خیلی خوشحال شد اونو برداشت و خونه داد دست زنش گفت بگی از خدا دل دیه دختر میخواست اینم یه دختر. زنشم گفت خیلی خب باشه بزرگ میشه توی کارای خونه هم به کمک میکنه. اما از اون طرف بشنو از پادشاه که دشمنش رو شکست داد و برگشت به شهر و خواهر زناش دویدن جلو. مارمولک رو دادن بغلش گفتن قبله عالم به سلامت باد. خاهر جادوگر ما این دفعه این مارمولک گنده رو براتون زاییده. پادشاه که این دفعه اوقاتش خیلی تلخ بود، با دستاش جلوه چشم‌هاش رو گرفت و فرمان داد قراولای سلطنتی بیان زنش رو ببرن توی یه قلعه حبس کنند. قراولا به فرمان پادشاه ریختن زن رو گرفتند. مردن توی قلعه حبس کردند. اما پادشاه که زنش رو خیلی دوست داشت، هرچه کرد نتونه سرو فراموش کنه. مدام شکل زنش جلوی چشمش بود. اما همه که یادش میامد که زنش هر دفعه براش میمون و پلنگ و مارمولک میزایید اوقاتش تلخ میشد با خودش میگفت نه این زن جادوگر بود. بزار همونطور توی حبس بمونه. ماها و سالهای زیادی گذشت شاید 15 یا بیست سال گذشت. که ملکه همونطور توی حبس موند و بچه ها پیش باغبون بزرگ می شدن. اما پادشاه یه دقیقه زنش رو فراموش نکرد. از غم قم قمقصه ای که داشت خواهر زناش هر کاری کردن حاضر نشد که دوباره زن بگیره. اما بشنوید از بچه ها که حالا خیلی بزرگ شده بودند. یک روز که بچه ها داشتن برای خودشون، یه باغ خونهشون راه میرفتند و به گل و درختا نگاه می کردن. یه گدای پیر اومد و گفت سلام بچه های خشکه. یه تیکه نون و یه جره آب به من بدید بخورم تا از خستگی و تشنگی در بیام یه چیزی خوبیم هم براتون تعریف میکنم. بچهها بچه ها دویدن نون و آب برای پیرمرد من که خورد و خستگی و گشنگی و تشنگیش برطرف شد اون طرف رودخونه سمتی که آفتاب در میاد یه چشمه است که لبه اون درخت بزرگی در اومده روی این درخت یه شاخه است که آواز میخونه و یه مرغ روی این شاخه نشسته که راز میگه آب این چشمه را هم به هر کس به پاشن دوباره جوون میشه این مرد باغمون که بچه ها خیال می‌کردن پدرشونه به هر کدومشون یه باغچه داده بود که توی هر کدوم برای خودشون یه بوته گل سرخ کاشته بودند وقتی ها قضیه شاخه آواز خون و مرغ رازگو و آب جوانی بخش رو شنیدند پسر بزرگتر گفت ها من هر طور شده باشه میرم از آب چشمه اون میارم که روی بابا ننمون بریزیم و جوون بشم فلکی از بس زحمت پارا کشیدن ببین چطور پیرو شکسته شدن پسر بزرگتر حق داشت، چون باباوننشون حالا دیگه با اصا و چوب دستی به زحمت میتونستن راه برند. با وجود این، پیرزن و پیر مرد وقتی فهمیدند پسر بزرگ سال چنین قصدی داره خیلی ناراحت شدن. میخواستن نگذارندشون اما، پسرک که تصمیم خودش رو گرفته بود گفت نه خیر من حتما باید برم و یک چنین چیزهای قیمتی و نایابی رو که اون گدا به ما نشونه داده به دست بیارم. اون وقت روشو کرد بردر کوچیکترش رو گفت جان برادر مواظب به بوته گل من باش هر وقت دیدی برکاش پشمورد و رنگ گلش کبود شد بدون که بلایی سر من اومده یا اینکه من مردم اینو گفت و با پدر و مادر و برادرش و خدا خداحافظی کرد و رافت رفت و رفت و رفت تا رسید به یه پیر زنی که ساکت و بیکار کنار پرچین یک مزرعه نشسته بود. همینطور که داشت رد می گفت ننه پیر سلام. ننه پیر گفت سلام پسرم پیر بیشی کجا میری؟ پسر گفت میرم شاخه آوازخوان و پرنده رازگو و آب جوانی بخش رو پیدا کنم. نن پیره گفت خب پس گوش بده تا بهت بگم. کمی که از اینجا جلوتر رفتی دوتا انگوش داد و محکم بتپون توی گوشات برای اینکه صدای بزن و بکوب زیادی رو میشنوی. اما تو مبادم این ساز و زرب گوش بدی یا تو باید همینطور کار خودتو بکنی و راه خودتو بری. به سر گفت خیلی ممنونم نن پیره خدا نگهدارت باشه اینو گفت و براه افتاد کمی که جلوتر رفت با دستهاش محکم سراخ گوشاش رو گرفت با وجود این صدای سازی رو شنید اول کوشید که گوشهاش رو محکمتر بگیره اما وقتی دید صدای بزن و بکوب رو باز هم میشنوه فکر کرد که حالا گوش هام رو گرفتم و باز هم صدای سازها رو میشنوم پس دیگه چه کاریه؟ از اون طرف سازها ها همون قدر را میزدند که دل آدم میرفت پسرک هم گوش ول کرد ایستاد به گوش دادند که ناگهان صدای ساز قطع شد صدای قشقش خنده اومد و پسر عطسه کرد و یه تیکه سنگ شد همین موقع بردر کوچیکه که توی باغش پای گلبوته برادرش ایستاده بود دید که نسیم سردی اومد و خورد به گل گلی که روی بوته بود رنگش کبوت شد. برگ هم که سبز و شفاف بودن یهو زرد و پرش مرده روی دنبرگ هاشون آفیزون شدن. پسر دومی که اینو دید چشماش پر از عشق شد. دوید پیش خواهره گفت جان خواهر چه ای که برادرمون اگه تا حالا نمرده باشه لابد در یه خطر بزرگی افتاده من همین الان باید راه بیفتم تو هوای گل منو داشته باش هر وقت دیدی که پاج مرده شد و گلش به رنگ کبود بدون بدونو آگاه باش که من هم مردم یا اقلا به یه خطر بزرگی افتادم اینو گفته با اهل خونه خداحافظی کرد و راه افتاد رفت و رفت و رفت تا رسید همون پرچین مزرعه به همون پیرزنی که اونجا نشسته بود همونطور که دار از پهلوی پیرزن رد می گفت ننه پیره سلام منو دعا کن که به مطلبم برسم ننه پیره گفت سلام به روی ماهد پسرکم البته که به مطلب بیرسی حالا بگو ببینم کجا داری میری؟ پسر دومی هم مثل پسر اولی گفت که میره شاخه و مرغ و آب رو پیدا کنه. پیرزنم همون چیزایی رو که به پسر اولی گفته بود به اون هم گفت. اون هم خدا نگهداری گفت و افتاد و رفت و رسید به اون جایی که دید یواشی یواش صدای ساز و تنبور میاد. پسر دومی هم که گوشاشو رو تا جایی که میشد محکم گرفت اما صدای سازی که میومد از بس دل رو بابود تا نبود، گوشش ویل کرد و ایستاد بشنیدند. شنیدن. که صدای ساز قطع شد، صدای قشقش خنده ای اومد و پسر عدسهی کرد و یه تیکه سنگ شد و افتاد. فرد صبح صبحش که دختر باغبون از خواب پا شد، رفت سراغ گل مرد در دومی، و دید که ای دل قافل گل سرخ کبود شده برگهاش زرد و پش شده، شد و به شاخه ها آویزونه دختر که اینطور دید بنا گذاشت به گریه اونقدر گریه کرد که باغمون پیره و زد دلشون ریش رو اما هرچی کردن گریه دختر آروم نشد همش میگفت برادرام هر دوتاشون مردن یا در خطرم من باید برم از حال و روزشون خبر بگیرم. اونا میگفتن نه دختر جان تو نباید بری، نمیخداریم بری. دیدی که برادرات رفتن و سر بگیز شدن، تو هم اگه بری دیگه بر نمی کردی اما دختر جواب میداد که نه، من میرم به شما قول میدم که حتما برگردم. باری هر طور بود دخترک باغبان و زنش رو که خیال میکرد پدر و مادر اصلی او و برادرهایش هستن راضی کرد و راف دادن او هم رفت و رفت و رفت و رسید به همون پیر زنه که ساکت و بیکار پای پرچین مزرعه نشسته بود سلامش کرد ننه پیره گفت دختر جان با این پای شتابان و چشم گریان کجا میری؟ دخترک گفت نده جان دو تا برادرهای من رفتن شاخه آوازخان و مرق رازگو و آب جوانی بخش بیارن نمیدونم چه بلایی سرشون اومده که برنگشتن من میرم که که انشاءالله برادرامو با شاخه و مرق آب پیدا کنم نره پیره گفت حالا که این طوره پس گوش بده دخترم برادرات حرف من رو نشنده گرفتن برای همینی که برنگشتن اگه تو هم حرف منو نشنوی مثل برادرات سنگ بیاغون میشی اون وقت همون نصیحتی رو که به برادرای دختر کرده بود به دختر هم کرد دختر خدا نگهداری گفت و راه افتاد اما چنان نصیحت پیرزن رو به گوش گرفته بود که هر چه صدای ساز و دهل و تمپور بلندتر میشد دخترک خودش رو بیشتر به کرگوشی میزد و قدم هاش رو بلندتر بر داشت اونقدر رفت و رفت تا رسید به یک چشمه بید سر چشمه یک درخته به همون نشانی که گدای پیر بهش داده بود قیچی باغبونی رو که با خودش داشت در آورد و شاخه رو که ازش صدای ساز و تنبور میومد برید و اون رو با مرغی که روش نشسته بود برداشت و مشکی رو هم که با خودش آورده بود از آب چشمه پر کرد و بیمعتلی از راهی که اومده بود برگشت اما هنوز چند قدم بر نگشته بود که دید از زیر مشک آب یک پسر رشید بلند شد و گفت منو به غلامی خودت قبول کن تو منو نجات دادی رختر پرسید تو کی هستی؟ پسر گفت من اومده بودم شاخه و مرغ و آب رو پیدا کنم به صدای ساز گوش دادم و سنگ شدم آبی که از این مشک میچکه ریخت رو دوباره به صورت اول برگشتم حالا من قلام تو هستم هرچی بگی اطاعت میکنم دختر گفت پس سود باش باید تمام این راه رو با آب چشمه آب پاشی کنی پسر شروع کرد به آب پاشی. هر کدام از سنگ ها که آب بهشون میخورد یه دختر یا یه پسر میشدند و سلام میکردن و میگفتند ما رو به قلامی خودت قبول کن دختری مرا اونبر رو نگاه کرد تا بالاخره چشمش افتاد به برادراش که اونها هم دوباره به صورت اولشون برگشته بودن تا وقتی که همه سنگ ها آدم نشده بودن چشم آب داشت اما همین که همه به صورت اول برگشتند آب چشم هم خشکید. فقط همونقدر آبی که دخترک توی مشک کرده بود باقی موند که اون رو هم با مرغ رازگو و شاخه آواز خون بردم خونهشون درست موقعی رسیدن به خونه که بابا پیری داشت از خوشحال گریه میکرد و زنش صدا میزد. گفت بیا ببین گلبوته خشکیده ها دوباره سبز شده معلومه که بچه از خطر نجات پیدا کردن نخترک از پشت سر رفت و چند چکه از آب جوانی بخش رو پاشید روی پیرمرد پیرمرد چرخی دور خودش خورد و از کرد و ناگهان به صورت جوان بیت ساله ای در اومد همین کارو با پیرزن زن باغبان هم کردن او هم به صورت یک زن خوشگل 20 ساله در اومد یه چه شادی و چه بزن و به کوبی رو انداختند که گوش فلک کر شده بود دخترم رفت و شاخ رو با مرغی که روش نشسته بود گذاشت روی درخت بعد به برادراش گفت بریم تو جنگل شکار کنیم تا بتونیم برای برگشتنمون به خونه جشن مفصلی بگیریم برادر رو قبول کردن و هر ستایی را افتادند. اما همینطور که تیر مینداختن و اقعه شکار می‌دویدند، خدا اینطور خواست که راهشونو رو گم کنن و این وران بردرن و آخر سر از توی قصر پادشاه سر در بیارن پادشاه داشت توی خیاغونای باغ قصرش را میرفت و به بدبختی خودش و ذرش فکر می کرد که ناگهان دید دو تا پسر و یه دختر هر از خوشگلی مثل پنجه آفتاب دارن بیخیال. میگن و میخندن و اینور اون برمیرن رفت جلو، اونها را صدا کرد و پرسید کی به شما اجازه داده وارد قصر من بشید؟ بچه ها که هیچ چیز رو از راستگویی بهتر ندیدن قصه خودشون از اول تا آخر برای پادشاه نقل کردند و آخرش گفتند که چطور پدر و مادرشون از یه چکه آب جوانی بخش جوان شده با گفتن که حالا اومده بودیم شکار کنیم که ببریم خونه و جشنی برای خودمون ترتیب بدیم. پادشاه گفت من که این چیزها رو تا با چشم خودم نبینم باور نمیکنم. نوکتار گفت حالا که قبول ندارید پس امشب بیاین خونه ما تا من با یه قطره از آب جوانی بخش قبله عالم رو هم جوان کنم. پادشاه قبول کرد و شب که شد رفت خونه باقه بود. با. اونا بونو زنشو بچه‌هاش اومدن استقبال جلوی پای پادشاه گوسوئن کشتند و با اعزاز و اکرام بردن نشوندنش بالای اتاق و حالا دیگه خدا میدونه چقدر خوشحال بودن از اینکه پادشاه به خونشون به مهمونی اومده دختر به پادشاه گفت قبله عالم به سلامت باد این صدای ساز و تنبوری که میشنوید مال اون شاخه درخته او مرغی هم که روی شاخه نشسته مرغ رازگوه بعد از شام هم که قبله عالم کمی خستگی در کرد اثر اون آب جوانی بخش رو خواهد دید سفره که پن شد ناگهان به قدرت خدا مرغ رازگو به زبان اومد گفت ای پادشاه نظر بکن نظر به اون پسر بکن رفتی به جنگ گولت زدن خواهر زنات چقدر بدن میمون انتر رو نوین شاخ سنوبر رو ببین. پادشاه از شنیدن حرف مرغ کمی ناراحت و متعجب شد. اما به روی خودش نیورد و شروع کرد بخوردن. چند لقمه که خورد دوباره مرغ رازگو به زبون اومد و گفت ای پادشاه نظر بکن به اون یکی پسر بکن رفتی به جنگ گولت زدن خواهر زنات چقدر بدن؟ تلنگ در رنده نبین قنچه پرخنده ببین پادشا این نفه کمی بیشتر به فکر فرو رفت اما با خودش گفت چیزی نگه هم دارم ببینم بالاخره چی میشه همین که از خوردن دست کشید دختر باقی دوی جلو آفتابه و لگر آورد که پادشاه دستاشو بشوره دوباره مرغ رازگو به زبون اومد و گفت ای پادشاه نظر بکن، نظر به این دختر بکن، رفتی به جنگ گولت زدن، خواهر زنات چقدر بدن، مرمولک کثیف نبین، دخترک زریف ببین پادشاه که تا اندازه این موضوع دستگیرش شده بود، ناگهان شبشیرش رو کشید و به باقه بون زنش گفت اگه میخواید از خشم من در امان باشید، باید راست بگید ببینم این بچه‌ها را از کجا آوردید؟ بیچاره باغبون زنش که از ترس نزدیک بود جان به جان آفرین بسپارد گفتند قبله عالم به سلامت باد اگر امانمون بدید میگیم پادشاه گفت همتون در امان هستید به شرطی که راست بگید اون باغبون هم موضوع پیدا کردن بچه‌ها رو در زنبیل هایی که آب رودخونه می آورد برای پادشاه شهر داد مرغ رازگو هم در همین موقع دوباره به زبان اومد و گفت ای پادشاه نظر بکن به دختر و پسر بکن میمون انتر رو نبین شاخ سنوبر رو ببین پلنگ دررنده نبین قنچه پرخنده ببین مارمولک کثیف نبین دخترک زریف ببین پادشاهی مرتبه دیگه شکی براش باقی هم بود که اینها بچه های نازنین خودش هستن اونها را در بغل گرفت و همگی از شوق به گریه در اومدن. همون دقیقه پادشاه به قلعه ای نوشت. زنش رو با عزت و احترام سوار تخت روان کردند، آوردند به خانه باغبان. قبل از هر چیز دختر رفت از مشک آب آورد. یک قطره مالید به پیشونی پادشاه، یک قطره هم مالید به پیشونی مادرش. اردو به سن 20 سالگیشون برگشتن. اون وقت ماجرا رو از اول تا آخر براش گفتن. مادرشون به سجده افتاد و خدا را شکر کرد. اون وقتا همگی با باغبان و زنش بلند شدن، شبانه رفتن به قصر و تا گاهی به یکدیگر نگاه کردند و گاهی از فرط شوق و ذوق اشک پادشاه دستور داد دو هولا رو به صدا در آوردند و, فردند و جارچی ها در کوچه و خیابون قصه رو به صدای بلند برای همه مردم نقل کردند. شهر و کوچه و بازار رو از نوع آینه بندون و چراغون کردند و هفت شب و هفت روز مردم کوبیدند و زدند و رقصیدند. اون وقت پادشاه دستور داد خواهرهای زنش رو تا گلو وسط میدان شهر گچ گرفتن تا هر کس از اونجا میگذره اونها رو توف و لعنت کنه معلومه که هیچ کس هم پیش نیومد از اونها شفاعت بکنه چون که اونها به هیچ کس توی شهر خوبی نکرده بودند هیچ کس از اونها دل خوشی نداشت باقی از زنش رواب که تا اون موقع بچه ها رو بزرگ کرده بودند پادشاه نخواست که از بچه ها جدا کنه این بود که دستور داد برای اونها هم ته باغ قصرش خانه مجللی به تا آخر عمر در ناز و نعمت به سر بردند و تا وقتی که بالاخره دست مرگ پیش اومد و یکی یکی اونها را از این دنیا برد و این قصه رو از اونها به یادگار گذاشت